بسیار بگشتیم، بگردت در و دشت، اندر همه آفاق بگشتیم، بگشت، از کس نشنیدیم که آمد زین راه، راهی که برفت راه رو باز نگشت. آباد خرابات، زمه خوردن ماست، خون دو هزار، توبه در گردن ماست، گرمن نکنم گناه، رحمت که کند، رحمت همه موقوف گناه کردن ماست. این هستی تو هستی هستی دگر است، این مستی تو مستی مستی دگر است، رو سر به یه ریبان تفکر درکش کشت این دسته تو آست، دستی دگر است. از فضل انان به پیچ و در ساغر پیچ، از خلد و سغر بگذر و در کوسر پیچ، دستار غصب به باده به فروش و مترس، کم کن غصبی پس طرفی بر سر پیچ.